بخش پنجم یونیزاسیان منفی هوا و های متنوع آن ابتدا این نکته را یادآوری می‌کنم که اتم از یک هسته که دارای بار الکتریکی مثبت بوده و الکترون‌های منفی که در اطراف آن قرار دارد و مجموع بار آنها با قدر مطلق برابر است با بار الکتریکی هسته‌ای که دور آن می‌چرخند تشکیل شده است بنابراین اتم از نظر بار الکتریکی خونساست و این حالت عادی آن می باشد. این وضعیت برای مولکولهای هانی صادق بوده و معمولا آنها از نظر الکتریکی خونسا هستند. ولی هنگامی که یک اتم یا یک مولکول تحت تأثیر اشعه ماورای بنفش خورشید یا یک شک از یک ذره کهکشانی یک یا چند الکترون خود را از دست میدهد بار مثبتی ظاهر شده و یک یون مثبت به وجود می آید. برعکس تثبیت یک یا چند الکترون اضافی توسط یک یا چند اتم باعث تشکیل یون منفی خواهد شد که در این حالت اتم‌های اکسیژن به راحتی دو الکترون آزاد را جذب کرده در نتیجه یون‌های اکسیژن منفی که توسط ریه‌ها قابل جذب هستند به وجود می‌آید. سوای آن گونه که فیزیکدان فرانسوی لانگوین نشان داده است یون‌ها می توانند تحت تأثیر دود و گاز خارج شده از اگزوز اتومبیل‌ها یونهای سنگین را تشکیل بدهند که به وفور در فضای شهرها یافت می‌شود علاوه بر تأثیر اشعه ماوراء و نفش خورشیدی و اشعه کیهانی که عوامل اساسی یونیزاسیون هستند این کار می‌تواند توسط رادیواکتیویته خاک جریان‌ها و تخلیه‌های الکتریکی یا سائقه، و رواندهایی که مسلمن دارای اهمیت کمتری هستند نظیر پودر شدن یا پخش شدن شدید قطرات آب در هنگام بارانهای شدید، آبشارها و یا در سطح دریا در جریان امواج و تلاتوم شدید آن نیز انجام شود. عبور باد از میان برکای سوزنی کاج نیز یکی از عوامل یونیزه شدن هوا محسوب می شود. هوا بر حسب فصل پاکیزگی هوا و شرایط آب و هوایی متغیر است. به دنبال تحقیقات گروه بسیاری از محققین، خصوصاً فیزیکدانان و بیولوژیست های روسی، مانند سوکولوف، واسیلوف، مینک، و خصوصاً چیچفسکی آشکار شده که سازگاری هوا و در نتیجه آب و هوا در سطح بالایی توسط یونهای منفی که تأثیری تحریک کننده روی اعضای مختلف ضمن ایجاد نوعی تراوت روانی دارند تعیین می شود. در عوض یونهای مثبت به وضوح نامناسب هستند. به همین دلیل پیش از رعد و برق یعنی در شرایطی که مقدار یونهای مثبت افزایش می‌یابد، بسیاری از افراد که حالت طبیعی دارند احساس کسالت یا حالت عصبی میکنند. از سوی دیگر بیمارانی که به آنژین صدری، سل و آس مبتلا هستند در این هنگام ناراحتیشان تشدید می‌شود. این حالت پس از رعد و برق بر اثر تولید یونهای منفی که از طریق امواج و تخلیه الکتریکی بین زمین و ابرها ایجاد می شود از بین می رود. ناراحتی هایی که بر اثر وزش باد شرقی در سوئیس و سایر بادهای نظیر آن ایجاد می شود نیز حداقل به صورت جزئی بر اثر مقدار بیش از حد یونهای مثبتی است که توسط این باد منتقل می شود. تجمع دودها و گازهای آلوده کننده در هوای شهرها و خصوصاً بر فراز مناطق صنعتی باعث کاهش مقدار یونهای منفی و افزایش یونهای مثبت می‌گردد زیرا ذرات دود و گرد و غبار توسط یونهای منفی جذب شده و در اطراف آنها تجمع می‌کنند و در نتیجه آنها را خونسا می می‌سازند از سوی دیگر این ذرات صفحه ای را در برابر اشعه ما بنفش تشکیل می‌دهند. که گونه که متذکر شدیم این اشعه از تولید کنندگان یونها می باشد. علاوه بر آن سوختهای های مختلف نیز باعث از بین رفتن یونهای منفی می‌شوند. و سرانجام طبق نظریه چیچفسکی و دانشمندان آمریکایی به نام های یاگلو، وینسور و بکت، که کسالت‌های نظیر سستی و سردرد که پس از مدتی افرادی را که در یک سالن بدون جریان هوا حضور دارند مبتلا می‌سازد در وهله اول نتیجه کمبود اکسیژن و خصوصاً افزایش یون‌های مثبت و به تبع کاهش یون‌های منفی است همین محققین همچنین مشاهده کرده اند حیواناتی نظیر خرگوش، سگ، کبوتر که در جوی خالی از یون منفی قرار داده شده اند، علیرغم رغم این که شرایط بیولوژیکی کاملا عادی بوده، در کمتر از هشت روز مرده اند. در اینجا برای مثال، مقدار منفی را در یک سانتیمتر مکعب هوا پس از رعد و برق یا در اماکن مختلف برایتان توضیح می دهیم. پس از رعد و برق، حدود 2000 هزار یون در سانتیمتر مکعب، در کوهستان حدود 1500 یون در سانتیمتر مکعب، در مناطق ییلاقی حدود 750 یون در سانتیمتر مکعب، در یک شهر کوچک حدود 250 یون در سانتیمتر مکعب، در یک شهر بزرگ آلوده حدود 50 یون در سانتیمتر مکعب، در اتومبیل کمتر از 10 یون در سانتیمتر مکعب. توجه داشته باشید که در داخل یک اتومبیل درصد یونهای منفی بسیار ضعیف است. بخشی از این حالت بر اثر فضای بسته و محدود داخل اتومبیل و خصوصاً ساختار فلزی آن به وجود می‌آید که از طریق تأثیر فارادی به سرعت بارهای الکتریکی را خونسا می می‌سازد. طبق نظریه بسیاری از فیزیولوژیست‌ها این مسئله رفتار و حالات تقریبا بیمارگونه‌ای مانند حالت تهاجمی شدید، خستگی عصبی غیرطبیعی، کاهش قدرت بینایی، کاهش واکنش‌ها کاهش نیروی حیاتی و احساس کسالت را که برخی از رانندگان ها از خود نشان می‌دهند توجیه می‌کند. همان‌گونه که گفتم، یونهای منفی ضمن ایجاد شادابی و نشاط روانی، اثر تحریک‌کننده‌ای نیز روی اعضای مختلف بدن دارند. سوای این موارد، این یونها باعث بهبود دفاع بدن علیه ویروس ها و باکتری‌ها می‌شوند. این سه تأثیر بر اثر روند زیر می‌باشد. در وهله اول، یونیزاسیون منفی باعث افزایش اکسیژن خون می شود. در واقع همانطور که در قسمت قبلی متذکر شدم، در این حالت اتمهای اکسیژن بسیار راحت تر از سایر ترکیبات هوا یونیزه شده و به همین دلیل قدرت نفوذ آنها افزایش یابد. علاوه بر آن، حجم هوای تنفس شده بر اثر حضور این یونها، و به دنبال تأثیر آنها بر سیستم اعصاب مرکزی که حرکات قفسه سینه را بیشتر کرده و روی عضلات صاف نایژه ها اثر میگذارد، افزایش می یابد. از سوی دیگر، طبق تحقیقات یاگلو، برانت، چیچفسکی، باسیلوف و شوات، قابلیت نفوذ سلول های ریوی نیز بر اثر یونیزاسیون بیشتر می شود. به دنبال این امر رساندن اکسیژن به طور کلی به بدن و خصوصاً به مغز افزایش یافته و بدین ترتیب این عضو فعالیت بیشتری پیدا می کند. در مورد مسئله دوم، دفع سموم از طریق این افزایش قابلیت نفوذ دیواره‌های سلولی ریوی که آن را توضیح دادم تسری می شود. یونهای منفی همچنین کارایی سیستم اعصاب مرکزی و نباتی و همچنین سیستم قدد درون ریز را تنظیم می کند. که نتایج این تأثیر بسیار گسترده است. در واقع اکثر بی های ارگانیک و روانی، نظیر بیخابی، سردرد، حالت عصبی و از نظر پزشکی آسم، آلرژی های فشار خون بالا و برخی از ناراحتی‌های روانی به این مسئله مربوط می شوند. و سرانجام یونهای منفی بدن را علیه گرد و غبار و باکتری ها از طریق سه مکانیسم محافظت می کنند. که این میکانیزم ها عبارتند از افزایش فعالیت مجرک های در خرخره و نایجه ها که نقش یک فیلتر طبیعی را بر عهده دارند، تأثیر مستقیم روی ویروسها و باکتری ها که یون منفی رشد آنها را متوقف ساخته و نفوظ آنها را از دیوارهای سلولی مشکل می سازد و سرانجام تنظیم سیستم مسونیت و دفاع بدن. چیچفسکی با انجام هایی روی حیوانات مشخص کرده هوایی که به صورت منفی یونیزه شده باشد رشد و کارایی آنها را در شیر دادن، تولید تخم مرغ و پشم بهبود میبخشد، فعالیت‌های جنسی آنها را تحریک کرده و بدنشان را برای مبارزه با عفونت‌ها آماده‌تر می‌سازد و درمان آنها را در رابطه با تعداد زیادی از بیماریها آسان‌تر می‌کند. وی همچنین مشاهده کرده است که هوای یونیزه شده به صورت منفی در گیاهان جوان زدن دانه ها را تصریح کرده و برداشت را افزایش می دهد. این نتایج و همچنین نتایج بسیار دیگر پزشکان را به استفاده از هوای یونیزه و خصوصا بخور یونهای منفی در درمان برخی از بیماری ها نظیره آسم، برونشیت های مزمن، سینوزیت ها، زکام اسپاسمودیک و آلرژی های متنوع آنژین صدری و سکته قلبی واداشته و از این طریق بهبود های آشکاری را در بیماران مشاهده کرده اند. در آمریکا شوروی و چند کشور دیگر کلینیک های تخصصی در رابطه با تولید یونهای منفی وجود دارد که بیماران و همچنین افراد سالم برای تنفس هوای یونیزه به آنجا می روند. در فرانسه نیز برخی از مراکز پزشکی در بعضی موارد از یونیزاسیون منفی هوا استفاده می کنند. یونهای منفی در افرادی که تحت عمل جراحی قرار گرفتهاند نیز دارای تأثیر آرامبخش بخش می باشد. و به طوری که کرن به لوحه نشان داده است تظاهرات دردناک را در اکثر افرادی که دچار سوختگی های امیق و یا زخم های پس از عمل جراحی هستند متوقف می سازد. خصوصا در رابطه با مسئله مورد بحث ما، یونیزاسیون منفی هوا، باعث بهتر رسیدن اکسیژن به مغز، تسریع فعالیت های روانی و به تقویت حافظه شده و سرعت واکنش ها را به مقدار قابل ملاحظه از طریق تأثیر تعادل متابولیکی افزایش داده، از تحریکات جلوگیری و حتی آنها را حذف کرده و سرانجام خوابیدن را سریعتر و امیختر می سازد. چیزی که باعث می شود مدت آن نیز کاهش بیابد. در رابطه با بیخوابی معمولا نتایج مثبتی به سرعت به دست می آید. به عبارت دیگر این کار در جریان هفته اول و گاهی از همان شب اول سمر بخش می باشد. به طور کلی پنجا تا شست درصد افرادی که دوچار بیخابی هستند در یونیزاسیون منفی راه حلی برای ناراحتی خود می آبد. به خصوص اگر بیخوابی ایشان علت عصبی داشته باشد. ای که از این موضوعات گرفته می شود این است که استفاده از یک یونیزه کننده به صورت دائم و خصوصا برای کارهای فکری مفید بوده و نتایج بسیار خوبی را می توان از آن به دست آورد. برای این کار می توانید از دو نوع یونیزه کننده استفاده کنید. نوع اول دارای پنکه بوده و نوع دوم خود به خود آنها را منتشر می سازد. نوع دوم معمولاً تحت عنوان یونیزه کننده محیط شناخته می شود. در نوع اول یک پنکه مخصوص باعث تولید یون منفی شده و آنها را به شکل یکسانی قبل از آنکه فرصت خنسا شدن پیدا کنند در فضا پراکنده میسازد. در مورد دوم از خاصیتی که بارهای یونی برای به فرستادن یکدیگر دارند استفاده شده. به صورتی که یونهای منفی به صورت خودکار از سرچشمه خود دور میشوند. شود. ولی هرچه از دستگاه دورتر شویم، تمرکز یونها نیز زعیفتر می شود. به هر حال، علا این مسئله بهتر است از این نوع دستگاه استفاده شود. زیرا وجود پنکه در نوع اول باعث تولید صدایی می شود که می تواند در انجام کارهای فکری یا خوابیدن مزاحم شخص شود. علاوه بر آن، وجود قطعات متحرک در آن، احتمال خرابی های بیشتری را در دستگاه به وجود می‌آورد. آورد. مقدار یونی که از نقاط خروجی یک دستگاه یونیز کننده محیط با قدرت متوسط خارج می شود، حدود دو میلیارد یون در ثانیه است که تراکم یونی تا 500 هزار یون در سانتیمتر مکعب تا فاصله 25 و پنی دستگاه، و تا 2500 در سانتیمتر مکعب در فاصله سمتری را ایجاد می کند. هنگامی که از این دستگاه استفاده می شود، ضرورت ندارد که تراکم خیلی دقیقی را جستجو کنید. زیرا یک بدن معمولی خود این حالت را تنظیم کرده و فاصله از دستگاه بین دو مرز حد اکثر و حداقل که روی دفترچه کاربرد دستگاه تشریح شده چندان تفاوتی ندارد. هیچ تأثیر جانبی از این دستگاه به وجود نیامده است زیرا استفاده از این دستگاه برای بازگرداندن کیفیت‌های طبیعی هوا میباشد که آلودگی هوا باعث از بین رفتن آنها شده و همچنین ایجاد کیفیت‌هایی که معمولا در مناطق مناسب با آنها برخورد میکنیم. هوای یونیزه قبل از هر چیز کمکی طبیعی است که امکان میدهد تا کار فکری به نحو مؤثری در طول روز انجام شود و خصوصا حافظه بسیار مطمئنتر و قویتر کار کند.